حکایت یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودم و شبخیز و موله زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر رحمت الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه گرد ما خفته. پدر را گفتم، از اینان یکی سر بر که دوگانی بگذارد. چنان خواب قفلت بردهاند که گویی نخفتند، که مرده اند. گفت، جان پدر، تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی. نبیند مدعی جز خیشتن را. که دارد پرده‌ی پندار در پیش گر از چشم خدابینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش